بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الله الله رحمنا اون بحث راجع به روایتی بود که از اول قاسم سیغل کتاب بود کتاب کافی و کتاب تحضیب در اون قسمت روایت با همه اختلاف داشتن گفتیم یک توضیحی راجع به این قسمت داده بشیم ارس کنم در اینجا دو مطلب رو البته از بحث روایتی خارج داریم میشونم اما خب یه حالا تنین بحث رو که دو بحث رو در اینجا ما متعرض بشیم یکی که مشهور شده فعلا در کتاب‌های زیادی داشت نیازنا رسید که شیخ توصی نام هر کسی رو داره اول سند در تهذیب ببره روایت رو از کتاب رو او گرفت البته این مطلب معلوم باشه که مرحوم شیخ توصی در جلد یک و 2 همین تهذیب تمام دونه مقدمه میشه یه مدتی که کتاب رو نوشته تمام سند رو ذکر می‌کرده حتی اون بخش اجازه مثلا از کتاب این سیریغه نقل می‌کرده این کتاب حسین در از استاد شیخ مفید و از استادش استادش استادش تا فرسن احمد بن محمد بن عیسی عشقی تا حسین سعید به نحوه اجازه نرمی کنزده وقت قادت شیخ توسی در جده اول و دوم این طوریه بازم توش تخلف داره کاراون شری داره تمام سند رو نرمی کن بعدها به این فکر افتاد که این موجود تطویل کتاب میشه میگه داره که نحوه اجازه است، هست که مستر رو از می‌بره. این به معنی اینکه چند نقره است؟ غیر حسین بن سعید، علی و کار تد... شیخ در تهذیب استفسار به این صورت میشه، اسم هر کسی که در اول رو بارد بیاره از کتاب او گرفت. این مشهوره بین علما. انصافاً این بحث هست که معلوم نیست که همه جا اینجور باشه. ممکنه به اسم احمد بن محمد مثل جایی که ما داریم شبوه کنه اما از کتاب او نگرسه باشه. از جدیه ولو ابتدا به اسم او اما از کتاب او نه این یک بحث بحث اول ما بحث دوم ما این که شیخ توسی در همین افراد واحد تعابیر مختلف داره مثلا گاهیم که احمد ابن محمد گاهیم که احمد ابن, محمد ابن ایسا گاهیم که احمد الاشعری احمد محمد الاشعری مثلا, مثلا. این تعبیر به زب داری یا نه گاهی میگه البرقی گاهی میگه احمد بن علی عبدالله گاهی میگه احمد بن محمد محمد بن خالد گاهی میگه تعابیر مختلف داره آیا تعابیر مختلف کاشف از تعدد مصدر یا نه همین روایت واحدی که الان ما در ما هست که درباره سفن قبایم و سیف در که جلد شیخ اولش در احمد بن محمد بن عیسی در جلد هفتم، در اول سانه داره احمد ابن محمد آیا با این تعدد عنوان با این تغایر رو عنوان شیخ چی میخواد بگیم؟ میخواد دو مستره؟ یا نه؟ البته بحث اول در عده زیادی از کتب آمده و جزبه ارسال مسلمات کردن که افتدار به اسم هر شخصی بکنه از کتاب اوث اما بحث دوبه ما نهیدن از اساطیز ما آیستیستانی این بحث ما اما راجعه بحث اول بله همینطور مشهور بین علیسون علماء این است که مرزون شیخ اگر ابتدا به اسم شخصی کرد از کتاب بود و منشه او هم واضحه مرزون شیخ در آخر کتاب تهذیب یک بخشی داره به نام مشیخه یا مشیخه بعضی میگن میاد مشیخه بهتره یا بین مشیخه و مشیخه بداشت حالا اون بحثش علامه این مشیخه ایشان در آخر جلد ده و در جلد چهار کتاب استفسار چا... چاپ شده این مشیخه ایشان به حسب چاپی که من دارم چاپ نجم هست شمارگذاری صرف خود مشیخه و گذاری شده تو دو مثلا چیزی نزدیک که اشتاده مشیخه مرموع شرفت است بعد ایشان در اول مشیخه فرمودن وقتصر نام ایراد الخبر همین جلده تنظیب در مشیخه صفحه چهان وقتصر نام ایراد الخبر علال ابتلا به ذکر اللذ... مسنف مسنف اللدی اخد من خبر من کتابی او صاحب الاصل الَّذِي أَخَدْنَ من مَنَعَسِلِ اسم همون آقایی که ازش گرفتیم نعم و از توفینا غایت جهدنا ما یه تعلق به احادیث اصحابنا رحمه الله المحتفت مختلف فیه و المتفم الى آخر کلامش لذا از عبارتی ایشون فهمیدن که ایشون اسم هر کسی رو که ابتدا کرد ایشان به اصطلاح از همون کتاب او گرفتیم لیکن انصافت این مطلب برس نیست درست خود شیخ گفته اما چون یه للمتکلم انیوله و به کلام این ما شام مالا می کلامه در مقام عمل این کار نکرده من درست در اصل اولیش همونه اما در مقام عمل بله این این عمل رو به اصطلاح انجام ندادن و اون توضیحش اینه که مرحوم شیخ قدس الله نسته وقتی که وارد خود مشیخ شدن طرقشونه که به اصحاب نارد کردن در اسنا گفتن که مثلا بعضی از روایاتی هم که از اون آغاز از همین کتابی دیگه چون تصریح کردن با تصریح مردم نمیشه دیگه نمیشونه اوالت اول مشیخ را قبول کرد. مثلا به حضب همین کافی که بیشتمنه هست در صفحه 29 ایشون چون یک شرحی هم این آیه صدار احمد در داده در صفحه 29 یعنی از اول کتاب تقریبا شرح طرق ایشان به کافی اول شرح طریقش رو به کافی میشه. بعد از این که شرح طرقش رو به کافی نشه میگه و مازکر توه و انعلیت نبرایم ناشه صفحه 29 و بعد روی توو از سن روی به حاد حل اثانید ان محمد ابن یعقوب ان علی الان در کتاب تهذیب استر احادیث زیادی توش اولش علی ابن ابراهیم خب طب طبقه اون قاعده خیال میکنه انسان از کتاب علی ابن ابراهیم بعد ایشان تصریح میکنه از کتاب کافیه یه خیلی روایات شما از علی ابن ابراهیم نعبوزه تایم لیکن در حقیقت از کتاب کافیه هم بعدا میگه باز طریق دیگری هم خودم دارم به روایات علیه نروان و میگه و بعد و ذکر تو ان محمد ابن یحیل اتار که اونم از مشایخ کلنیز و قدروبی تو بهاد الاسانین ان محمد بن یحیل باز یک طریق دیگری هم دارم باز و ذکر تو ان احمد ابن اداریس که اشونم مشایخ اساسیب بلاواسته مرحوم کلنیز باز میگه از همین طریق از محمد بن عبور و راه دیگری هم اضافه می بعد میگه و مادکر تو حسین محمد رو تو با عاد محمد بن عبور و ان حسین محمد به ها ماله حسین محمد هست بعد محمد بن اسمایل نیشابوری هست بعد حمید ابن زیاد هست همین طور می‌کنه. احمد زیدو مشرق مباشر ایش یعنی به عبارت دیگر از عبارت کلینی چی معلوم میشه که اگر ایشان ابتدا کرد به اسم مشایخ مباشر کلینی از کتاب کلینی گرسته اگر گفت احمد ابن عزیز از کتاب ایشان گرست و از ذکر میکنه افراد دیگر ذکر میکنه اختصاص به این چند تا ایش من نیست خوندن این یک یک قسمت دیگه راجع به عزی چند کتاب ذکر میکنه مثلا در همین جا که طریق خودش رو به مرحوم کلگی داره بعد از این که بعد از این که چند تا از مشایخ مستقیم کله یوسف میکنه میگه و من جملت ما ذکر تو همون و من جملت ما ذکر تو انه احمد ابن محمد ابن ایسا ما روی تو به ها دهل اصانی محمد ابن یعقوب انه ادت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن ایسا صفحه چلو دارم اینجا کنید و چلو ایشون میگه اگر من حتی از احمد ابن محمد ابن ایسا نعب کرد در حقیق کافی نرم از ایشون تقفرمو بگه البته این عبارت جلویه هم میشه خوند اما بعید اون ب و اون که بگیم اگر در جایی هم ما از احمد بن محمد بن عیسی از کلینی آوردیم در حقیقت بعد احمد بن عیسی است یعنی ولو اسم کلینی رو میاره لكن کلینی هم از کتاب احمد بیرفته من هم به جایی که از کتاب احمد بگم از کلینی که این بعیدین معنا خیلی بعیده ظاهر این عبارت این است که من ابتدا میگم به اسم احمد بن محمد بن عیسی لكن من از کتاب احمد نگرفتم از کتاب کلینی گرفتم این ما ذکر من این لفت همون اون وقت لذا ادهی از افراد رو ایشان ذکر میکنه که حتی مثلا سلسلش اصلادهای کولیمی هم نیستن اما آثار اینها رو از طرق متعدد گرفته. بله اون وقت الان من یک دیرو اینجا درد کردم برای تون عزم. مثلا روایات علی ابن ابراهیم مؤزمش از طریق کلینیس و از هم از روایت خودش روایت محمد ابن یحیوی اتار مؤزمش از طریق کلینیس و از جام از خودش حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی در مشیخه نگاه میکنیم مثلا این محمد ابن یحیوی اتار رو که الان بردم نوشته بعضی از روایاتش من از طب کلینی و اخبر انیدهی ایران فلان انفلان اس مرده حالا مشکل کجا میشه؟ مشکل این میشه کنم اونی که از طریق کلیمی صحیحه اونی که از طریق خودش ضعیفه. تقید فرمودی؟ حالا آن راجع به همین محمد بن یهی و عطا میخونم از این مخاطمون داریم بحث مشیقه ببینم وقتین چون این نکته جای گفته نشده من الان میخونم ببینید میگه هم این در صفحه 33 و 34 از این شاپی که هست از مشیخی من و میگیرم جمله به ما ذکر تو محمد ابن یهیل اطال فقط رو بی محمد بها دل اصانه ان محمد ابن یهیل اطال این سنه صحیح و اخبرانی ای به ایزا حسین ابن الله ابن قضایری پدر و ابالحسن ابن عبیجید القومی جمعاً ان احمد ابن محمد ابن یهیل پسر محمد ابن یهیل این آوازاد توسیق نشده احمد ابن محمد توصیقش انا ابیه محمد ابن یحیل اتار وقتی کسی بخواد بلانسبت مولا قطی بشه مولا قطیش اینجا میشه اگر روایت از محمد ابن یحیل اتار بود از باب علم اجمالی نیمیدونیم آیا از کتاب کلیمیز یا از سریل خودش دید. یکی صحیح یکی ذریع اقلیت پرموندیم من این افرادی رو که ایشان اسم بردن بگم مثلا روایت ابن ادریس از دو راهه یکی از خود طریق کلینی که از خودش هر دو هم هم اما روایات احمد ابن محمد ابن ایسای عشقری که الان محل کلام هست از پنج طریق داریم به ذکر سنه. الان در کتاب مشیخه یکی از طریق کلینیه که صحیح یکی از طریق کتاب نوادر مصنفین احتمالا محمد ابن علی ابن محبوب باشه این طریق صحیح از کتاب محمد نه یکی از طریق صفاره این طریق هم صحیح. یکی از طریق صعده این هم صحیح یکی هم تصریح میکنه ما آخر مقاله من کتاب نوادری چون محمد, محمد محمد کتاب نوادر هم داشته این طریق هم صحیح لذا روایات احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری و مرحوم شیخ از پنج مستر نهارم می کنه تقدر کردیم یکی مال کلینی رو که الان برای شما خوندم که الان دیگه تکرار نمیخواد بکنم که قرض کردم سفیه 42 و 43 و اما بقیهش شیخ خود عبارت من عبارت من عبارت شیخ خود. این حوالد خوبیه این مطلبی که مشهور شد اگه افتزاد کرد حتا از کتاب نه روشن نه این اصاز نه مثلا در صفحه 72 ساعت داره و معذکر تو فیاضه کتاب ان محمد ابن علی بن محبوب سر بذcileکت می کند بعد بیا من جمله معذکر تو ان احمد بن محمد ایسا مارو تو با حدل اسناد ان محمد ابن علی بن ان احمد بن محمد مثلا من جمله معرو تو ان حسین سعید ماروheardل اسناد ان محمد ابن علی بن من احمد ابن محمد انهما جميعا گاز در صفحه 73 طریقی به صفار ذکر میکنه بعد و می من جمله مذکر تو ان احمد ابن محمد ماروی تو بهاد الاسناد هن صفار ان احمد ابن محمد درک کردید پس این مطلب حالا من اینه که خلاصه رو به دو روایات احمد محمد بنیسا از پنج سریده روایات حسین سعید از چهار طریقه از کتبش به صحیحه از طریق محمد بن محبوب که ضعیفه از طریق صفار و طریق سعد درسته روایات برقی همه از طریق کلینی داره همه از طریق خودش داره روایات حساب محبوب ادیش از کافیه ادیش از خود کتاب محبوبه اددیش از کتاب محمد بن علیه محمود که اینی که کی از کتاب سفاره اددیش از کتاب سعده و اددیش هم از نوادر احمد بن محمد بن این شد من در اول جلد ده اون موارد متعدد رو استخراج کرد پس این مطلبی که الان در کتاب ها ارسال مسلمات شده خیلی معروفه که شیخ ابتدا به اسمه مثلا احمد بن محمد از کتاب ایشان نه دلیگ برش نبید ممکنه از کتاب کلینی باشه اینکه از کتاب محبوب باشه محمد بن علیم محبوب و غیره رضاله که الان بله بعضیش هم از کتاب خود ایشان هم. البته در این طرقی که ایشان به احمد بن محمد بن ایسا داره یکی ضعیفه چهار فستهی همه یکی ضعیف بنابرای شد این مطلب عرفا باشه همینطوره نه بحث دومی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا شیخ برای اینکه بیان مصدر بکنه اختلاف تعبیر داره یا نداره این رو هم از کردم طوری که من خبر دارم ندیدن نر جالی ها و یا توبه ها علما متعرض شده باشن آیسی سیستانی هست تو استاد ایشون قایلن که بله شیخ تعاویرش هم بود خدا چون مربوط به احمد ابن محمد ابن ایساست همین یکی رو میگن بغیر دیگه آقاون خودشون مراجعه راجع به احمد ابن محمد ابن ایسا در این پنج موردی که ایشان اسم برده ایشون دو تا تعبیر دارن مثلا در اونجایی که از کتاب کُلینی میگه مقام فی احمد بن محمد بن عیسی باها در اسناده هم اسمش رو احمد بن محمد بن عیسی بود در اونجایی که از طریق صفار و سعد در این دوره اسمش رو به عنوان احمد بن محمد برد در اونجایی که از کتاب محمد بن محبوب و خود کتاب نوادره اونجا اسم کامل برده احمد ابن محمد بن پس نسبت به همین شخص واحد شیخ دو تعبیر داره احمد بن محمد و احمد ابن محمد بن جایی که از کتاب صفار و سعد تعبیر به احمد بن محمد جایی که تعبیر از کتاب کلینی یا خود نوادر ایشان یا کتاب محمد بن علی محبوبه در این سه مورد تعبیر شده به احمد بن محمد بن عیسی حالا مشکل این است که این روایت واحده ای که انجام داریم ما الان محل, محل کلام ماست قواعد السیف این دو تا داره دوبار آمده هر بارم یک تعبیر داره در جلد 6 آمده احمد بن محمد بن عیسی در جلد 7 آمده احمد بن محمد شد؟ این تصادفاً این روایت واحده هر دو تعبیر رو داره نه یک تعبیر از کنم آن رجالی ها اونی که که ما تاردهیم متعرض شدن فرق بلاحظ تعبیر نداشتن آیا سیستانی قاله به من منشه فرق ایشان خود عبارت مشیخ هستن اینکه چیزی چون میگن تو خود مشیخه مرحوم شیخ کلینی اینجور تعبیر کرده مثلاً بعد از این که پیشان رو به مرحومه کلینی دارن الا انیقون کنان خوب نمیباردش نه و مثلا در سفیه 42 من جمعه مازکر تو، من احمد ابن محمد ابن عيسى اسم كامل بود ما رویتو بهادر اسانید عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن میسر اسم ایشان از این عبارت معلوم میشه که اگر ایشان احمد ابن محمد ابن عيسى به کار برده مثلا در صفحه 73 بعد در اونجا چیزو دارن؟ به سفار و ماذکر تو بیاده کتاب محمد بن حسن سفار طریقش رو ایسان مرحوم شیخ به سفار نوشتن بعد می و من جملت خوب دقیق کنید و من جملت ماذکر تو انا احمد بن محمد ایسا دیگه نداره اینجا و من جملت ماذکر تو انا احمد بن محمد ما روی تو راد الاسناد ان محمد بن حسن سفار ان احمد ابن محمد ببینیم و من جمعه مادکر توه احمد ابن محمد مادکر روان فلان ان احمد ابن محمد پس از این عبارت معلوم میشه که جایی که احمد ابن محمد بگن مثلا کتاب صفار یا کتاب صحب ابن عبدالله اما جایی که احمد ابن محمد ابن ایسا بگن کتاب مثلا یا کتاب نبازره از کلم این بحث با این دقت جایی بیده نشده خب پس دو بحث ما از کنیم امروز خارج از بحث میته میشیم وارد بحث رجالی میشیم بحث اول آیا این که الان مشهور شده که شیخ به اسم هر کسی بکنه از کتاب او اوث نه این واقعیت نداره این در اول مشیخه آمده قبول این اباظه شیخ هست در اول ناشنا اما تو خود مشیخه شیخ از این طریقه خارج شده تصریح کرده در خلافش این بحث اول درستی که بگیم همیشه شیخ از اول اسم هرو شخصی نه البته این مطلب را هم خوب دقت بفرمایید در مشیخه شیخ این طوره که اسم هر کسی از کتاب بوست اما مشیخه صدوق این طور نیست ها اشتباه نشه صدوق هم مشیخه داره بعضی تصور کردن صدوق هم به اسم هر کسی بکنه از کتاب بوست مثل شیخ نه صدوق هم چیزی نیست کتاب صدوق همچیزی نیست از کردیم این دوتا مشیخه با همدیگه فرد هم دیگه من زارن تا این ب یه حال بودم عرض کردم عنوان مشیخه یا مشیخه و مشیخه علا تقدر فرقی نه ما ما در کتاب‌ها که داریم دو جور اطلاق داریم مثلا اگر میگن مشیخه فلان یعنی ایشان یک کتابی نوشته متعرض اصاتی دو شده. که مشیخه من فلان و, فلان و فلان و فلان این یه جور مشیخه یه جور دایی که مثلا مشیخه نوشته شده مثل کتاب مرحوم حسن محبوب کتاب نام مشیخه داره که این کتاب را ما ارث کردیم، ادعی جزء کتب رجالی نمیشن، چون مشایخ در رجال هم دیگه. ارث این مشیخه حسن محبوب رجال نیست، حدیث اشتباه شده. ادی از کتاب های کتابای رجالی قبل از مرحوم نجاشی نوشتن. اون ارث کردن صحت نداره. مشیخه حسن محبوب کتابی است که درش احادیثه لكن احادیث رو به ترتیب اساطید آورده. چون در همان تفنن بود دیگه. گاهی احادیث رو به ترتیب امام میوردن مثلا هر چی حدیث امام صادق واقع اینجوریه گاهی حدیث رو به لحاظ اون راوی اخیره از امام می آوردن مثلا احادیث زراره در کی شهرستانند اصطلاح مسند بیشتر تو این به کار میشه مثل مسند احمد بن حنبل اینطوری دیگه مسند عثون عیبد مسند عمر مسند علی بن ابی طالب مسند مثلا ابو هرره اسم جمع احادیث بر حسب اون راوی اخیرن رسول الله اون صحابی از رسول الله انواع مختلف بوده یکی از جمع ها بر حسب مشایخ بوده مثلا مرحوم حسب محبوب من با مثال مخابب بگم از عبدالله این سنان حدیث که تمام احادیث عبدالله این سنان یک جا برده. از جمیل حدیث نمیتونه همه احادیث جمیل یک جا برده ولذا بعدهایی که از علمای خود به نام داود ابن کوره این کتاب رو این ترکیب و به هم زد احادیث به حسب عباب فقهی جمع آور سلاط و صوم اینها به حضب تنظیم فقی پس مشیخه حضب محبوب کتاب حدیثی یکن تنظیم حدیث در اساس مشایخه هست. مشیخه مرحوم شیخ توسی طرق ایشان به مسادر اصحابه خوب اشتباه نشون به کتب و مسادری ای که ایشان ازش نقل کرده مشیخه شیخ صدوق در کتاب فقی طرق ایشان به خود روایات نه به کتب حالا ممکن این کتاب روایت زراره از کتاب قصر حلبی گرفتیم یا از کتاب حماد رویت زراره بیشتر از کتاب حمادی گرفتیم حماد ابن به اصطلاح عثمان روايات حلبی رو از طریق اون گرفته و اون حماد ابن حریضه, طریق حریضه شده. از طریق حریضش درد غلط این که مشیخه فقیه ترقیه ترقیه ایشان به روايات نه به مسادهه این دو تا با هم دیگه این دو سه جور با هم اشتباه نشید حالا آیا این مطلب که ایشان ترمودن میشه قبولش کرده انصافا من هنوز برای ما جا نیخته دو جهت هم داره این که این مطلب جا نیفتاده. یکی این که از خود مشیخه این دقت در نمیان مثلا در همین مشیخه در صفحه 72 قبل از ما نمشته هم این جملت مادکر تو انا احمد ابن محمد ابن ای ما روی تو به حال رأسانی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد اول ابن ایسان رو برده بعد ابن ایسان نبرده پس این انتظام که ما بگیم اگه ایشان هر جبه احمد ابن ایسان یک مسترگه احمد ابن محمد از دو مستر روشنگیست این صفحه هفت و دو اعضف الازالک اونی که ما وجدانن با تطبع استقرار در کتاب شیخ دیدیم، مثلا خیلی جه حدیث احمد محمد ورده و همون حدیث بینه سندن متناً در کتاب کافی هم هست کافی هم تنوع داره یک ج احمد محمد بن عیسی داره یک ج احمد محمد شیخ همون عباد کافی رو ورده وا که مستر واژه کتاب کافی است معذال ایشان عبارت رو متعادل بردا متنازع اورد لذا این بحث دوم روشن نیست که اگر گو احمد محمد بن عیسی از دو تا مصدر گو احمد محمد سه مصدر مثلا یا این بحث دوم انصافا نمیشه فعلاً به شیخ نصح بدیم که این دقت رو من شیخ به کار برد این به این قسمت از نظر سایرین اگر ما قائل بشیم که این دقت رو شیخ به کار برده شیخ دو تا عنوان داره از احتمالاً از دو مستر به کار برده حالا بعد از این برای این نقطه‌ای که امروز خارج از بود برگردیم به خود روایت عبد القاسم خب بیروز بهات عبدالقاسم سیغلمفسر خوندیم مثنی که شیء انفراد داره و متعرض احوالشه مجموعه کلماتی که تا حالا صحبت شده جو عبدالقاسم سیغل است عرض کرد این ایشان زواهرشه بوده از خلتشی است از وجودانشی است از،, از وجوه اجتماعیشی است و معلوم میشه که تشکیلات مفصلی هم در شمشیر و یعنی کارخانه های سلاح به اصطلاح میز اصل انساندی داشته به حیثی که در یک سآلگی داره که من از سلطان خرده پروشم با سلطانه از به سلطان نید این این میشه یک شخصته و یک تعبیرم داره که خودش با فرزندانش نه و قوم و نعمن که همه نشون میده که ایشان تشکیلات مفصلی داشته آیا اسم ایشان و خلده ایم رازی رازیز احتمالش هست؟ یقینش مشکلی در ابواب مختلف ایشان سوال داره که احتمالاً سوالاتن به امام عسکریه امام عسکریه رشد امام حادی و پیشون هم به امام عسکری <تصفيق> بسید و این سوالاتی که الان ازشون به ما رسید در با مختلفه اخصاص به باب هم نداره و روایات ایشان هم معمولون به هاست توش چیز خرابی نداره البته شناسایی دقیق هم نداریم ما اما روایاتش خرابی هم نداره روایاتش هم تقریبا تا حد زیاد در کتاب کافی و تحذیب بوده بعضیاش هم فقط در کتاب بفضل تحذیب هست در کتاب کافی وارد نشد تا اونجایی هم که ما دیدیم مرحوم صدوق هیچی از رواسش نقل نکرده حالا چرا نمیدونی؟ مرحوم شیق صدوق قد از الله نفسه و این که خب قربه اهدم داره هیچی از رواس مرحوم عبالقاسم سیغن رو نقل نکرده این حدیثی که الان در ما این سوال و جواب این سوال و جواب یک زیلی داره اونم سوال جوابه راجع به به پوستی که از حیوانات دریایی میته میگیرن حیوانات دریایی برای دسته شمشی که اصطلاحا به اونها سفند میگفتن اون پوسته حالا تمساهه یه جور ماهی دریایی است، یه ماهی خاصیه من نمیدونم چون چند جور تفسیر شده سفن. بلا همین سمکنه ماهی دریازی ایوانات دریایی الان چون تنساه دویه از اون سفن رو گرفتن بعد میشه یک پوست صفتی بوده که ازش دسته شمشیر بیساختن که سای کمی نرمم باشه هاتو خشونت نباشه متعفل نشه خراب نشه الاخرهی حضایه که یکیش. الاخرهی الاخره. ظاهرش این توبه، ظاهرا خود قواائم و سفن از توصف ماعصفن، لكن ظاهرا به سفنگیان به لحاظ اینکه اون سفن درست شده. خود قواائم و سفن که سفن است. کلمه سفن با سفینه کردن کشتی هم باشه تناسب داره. چون حیوانات قولپیکر دریایی مثل یک کشتی به حساب همین نهنگ ها مثلا، چه چیز شبیه اون بوده. حالا به هر حال این تیکه روایت که راج به سفنه، اون این رو مرحوم کلینی از سندهش هم موظمه شیخ توسی هم به سه بار اینو آورده دو بارش از طریق احمد بن محمد بنیگیسا آورده یه بارش هم از کتاب سفار آورده یعنی الان ما در این دو کتاب ما چهار بار این زیز به تنهایی نمه شده یک بار توسط کلینی سه بار هم توسط شیخ که کاری هم که شیخ کرده یکی شکی کمی به کار اما عین کار نیست این راجع به این هست اما اونی که الان محل کار ماست اون این الان محل کار ما نیست صدوری سفر الان محل کار ما نیست اونی که الان محل کار ماست غلاف شمشیر صدر واضی که مفصله حدود 4 5 صطره که غلاف شمشیر رو ما از هیبیت حیوانات سازیم و ما کاری هم نداریم لیسد لنا معیشتان لا تجارتان غیرها و نحن مسترونه و سؤال که میکنه خیلی واضحه یعنی واضحه که اول القاسم سیقل از وادگیش هم مرد ملا هم هست بی, بی رفت سوال نمیکنه یک سوالش راجع به انتفاعه یک سوالش راجع به نجاست و تهارتونه یک سوالش هم راجع به مانعیت تلافه نه باید نجاست ناخیر فروشه یکی هم راجبه مانعیت نماز اون دقیق فرمودیم سوالاتی هم که داره خیلی دقیقه اونها با ش... صابران شهرزاد دیگه تکرار نمیخواد بکنه انصافت نشون میده که مرد چی تاه یک کاسب مطلق معمولی می سوالاتی همینطور نشون میده که ایشان اطلاعات فقهیشان بد نبرده خیلی قشنگ سه تا سوال رو ایشان مطرح میکنه خرید و فروش مانعیت نماز و جواز انتفاع. به جلود میته طبعا انتفاقی که در اون زمان بوده غلاب شمچی بوده که همین جلد میده رس میکره و در جواب هم امام فقط مانعیت صلاح جواب میدن اتخط صحبند سلام که لباس دیگه نماز بخون اون دوتار جواب نمیدن و شما میدین اصولاً ما در هر جا در هر کلان، وقتی چیزی گفته نشد اون غنون و اوهام و گمان زنیه انسان زیاد میشه گفته شد که خب راحت انسان معروف فقه های ما فهمیدن چون امام مانعیت رو جواب دادن معلوم میشه اون دو جهرش مشکل نداره یکی انتفایش مشکل نداره یک هم و فروشه این رو به اصطلاح به لسان تقریر فهمیدن نه تصریر یعنی امام صلوات الله صلوات الله علیه نسبت به مانعیت موضع گیری کردن نسبت به اون دو مطلب موضع گیری نکردن چون موضع گیری راجی به اون دو مطلب نکردن پس اشکار و ولذا این بواید در کلمات اثار ما به عنوان یک روایت مهمی که این انتفاع به میترده شده اجازه خیلی فروش بعد این انتفاع اگر انتفاع جایز باشه خیلی فروش هم به این این بخش دلالیه این بخش سرد و تاریخی چه ارز کردیم هم بخش دلالیه ما سابقا عرض کردیم مشکلی این مطلب انصافا خیلی سخته قبول این مطلب به این قبیل کار ممکن مشکل ما معتقدیم به لحاظ اینکه این شخص یک شخصیت اجتماعی بوده خصوصا اگر درئی بوده که شیعه درئی در اقلیت بوده و خصوصا که ایشان اسلحه فروش بوده کارخانه اسلحه سازی داشته که طبیعتا در هر زمانی کارخانه اسلحه و تولید اصله و فروش اصله یک کار سنگینیه کاره. همیشه درده سر از طرف سلطه حاکم روی اینها بیشتر حساسیت هست ایشان اضافه بر او با خود سلطان هم معامله داره از اون طرف هم مشهور بین اهل سنت جلد میتر با دباق پاک میدونه. خیلی نادر دارن توشون که پاک ندین خب اگر پاک هم میدونن دیگه خیلی فروش هم اشکال نمی کنن پس هم این حالاته بفرمانیم این حالات برای امام خواهی جواب دادن بسیار مشکل میشه من فکر می‌کنم رون اون که امام فرموندن انا لنقول و کلمه ولنا منها سبعون مخرج ها دقت دقیقه مفهوم این عبارد این است که اگر اون عبارد دیگه انا لا نعود رجل من کنفقی حتی یعرف معارید یعنی کلام ما آدود داریم گوش کنایه از گوش کنایه کلام بفهمید. اگر معیار در باب به تقیه و کلمات اهل بک لنا سب اون باشه همین که بگیم امکان داره ولی و دور از ذهنم باشه اون کلام رو به هم می ریزه. من به اکت این که که آلم تهمیدم من اعتقادم اینه که روایت هر سر رو میخواد مانعیه بشود هم خیل فروش هم به اصطلاح انتفاع و هم مسئله مانعیه تونم درسته ما در سب ندونیم در سبه ما بین نجاست و مانعیت هم تنافی نیست. مثلا پوست پش موی گربه پاکه، لكن مانع نماز. در اینجا آدم وقتی دقت می‌کنه، امام می‌فرمازد لباسی دیگه بپوش یعنی مانع نمازه. خب این مثل موی گربه که نیست چون محفوظ این که این حیوان حلالی بوده، الاغ بوده. پوست الاغ همون واسه علاوه چنجوری روزونه یا پوست گوره خر. خوب دقت بکنید. اگر امام میگه مانع یعنی چی؟ یعنی چون؟ تسکیه نشده مثل, مثل موی گربه است. در موی گربه طبیعت موی گربه اینه او تسکیه بشه یا نشد اولا احیان گربه هم بیا صورت آدم او به قبله سر بباره باز هم موی و هم پاک هم مانعه یاده نماز داری تقدیم اما فرض کنیم پوست گوره خب اگر تسکیه بشه که مانعه یاد نداره نگسته نداره. اگر تزکیه نشه مانعیت داره پس وقتی امام میخوان بفرمایند شما باید این لباس بر نماز بگیریم میخوان یک جوابی بدن که حتی اگر این سوال و جاوه حضرت دست سلطه سیاسی هم افتاد در ایشان پاکوش درست نکنه. چون اونا میگن مثلا با مثال با دباغ پاک میشه و این شمشیر هم پاکه چرا مثلا حضرت رضا گفته نجسته. حضرت بجه این که بفرمان این نجده بجه این که بفرمان که لاعظه به او بجه این که بفرمان که لاعظه انتفابه فقط مانعیت نماز رو مصرح کردن که اگر فردا هم از طرف سلطه سیاسی بیشون کنش چون اینجور رفتیم خواهد رو چه اشکال داره میته که از بهترسیش نماز نخونه مخصوصا که حضرات اهل سنت دارن که وقتی حضرت موسا همی خطابان اخلاع نعلایی این امر به خلع نعلین به خاطر اینکه نعلین حضرت از پوست حمار میته بود. دقت کنید. خب حضرت دفعه میگم شما پوست حمار خب انسان چطور با پوست میت وقت نماز بکنه؟ الله تبارک و تعالی حد موسی من ایشو از دخول در طور سینا به خاطر اینکه از پوست الا بود. خب انسان منع میشه از من نماز قضا. مثلا اگر انسان خوب تامل بکنه خب چرا اجعل اتقل صحبا نستن؟ اجعل صحبا سوال چه مشکل داری؟ فقط مانعیت هست معنا رو اینجا لذا باید بگیم نکسش اینه که امام او رو میته میدونن و میته رو با زباقی پاک نمیدونن بوده قصیت؟ از از اجزای میته با اون آوانه ایست اون ما که تامو گفتم اجزا که قراره سر لباسی nao خود فوت ورای میتونه مانعی لباسه لباسی سوال نمیکردم چرا می‌خوچید با باند لباس سوال می‌خوید لباسی که قرارشون گرفتن نشد روانو استفاده برای سیف هم استفاده. به دست به لباسشون رسید امام میگه به مخالفت نیست همه یعنی مورد نجاستر. نجاستر ما کلام و ازا به نظر من به خلاف این تصوری که الان ما انجام دادن این سابقا این بحث داشت. به نظر ما این روایت دلارت بر عدم جواز انتفاق و نجاست و به طریق اولام میکنه مانعیتش که واضحه بقیهش به طریق اولام اینشالله از فردا بقیه روایت میتر میخونیم من و جوازم از اللہ <سؤال> <سؤال> رو <سؤال>